چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ قرار است من و سعید به استان اصفهان برویم خوش به حالت، استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم آلی است، اتفاقاً الان هوای اصفهان خیلی خوب است بهار اسفهان بسیار دلپذیر است. اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ بله، آب و هوای استان اسفهان شبیه تهران است. شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است. زاینده رود کجاست ؟ زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اسفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد. آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد.